بسم الله الرحمن الرحیم دوره مبانی فقه نظام جلسه دوم کلاس استاد تهرانی به شیوه‌مون این است الله الرحمن الرحیم خب ادامه بحث رو خدمت بزرگان باشیم یک نکته رو فقط ابتدا خدمتون عرض بکنم چون یکی از دوستان هم بعد جلسه اومدن گفته داشتیم. به این مباحثی که ما داریم عرض میکنیم خدمتون این تلقی ایجاد نشود که فقه موجود به درد نمیخورد یا این نمیدونم به کار ما نمیآید یا هر چیزی که شما میخواهید بگویید ما بر این پایه اصدادهی ای و باید پیش بریم این بنیان ماست، بنیاد ماست همه این اصازیدی که بنده دارم اینجا بیانانتشون رو بیان میکنند، خیلی مردون آلایشون رو ارز میکنند حتی اونهایی که معتقد به بیشترین تغییرات، تحبولات و اینها هستند تعابیر سندینی ناظر به همین فقه موجود دارند مثلا فرص میدوی این میرباوری میگم فقه ما قتون آرام هست با این یعنی چون بر پای حجییت پیش اومده یعنی از مباحث رو در واقع در فقیل موجود در همین اصول موجود و این ها تیش اومدیم این هایی که داریم عرض میکنیم به بنایه نفیه این هایی که داریم به بنایه نفیه داشته ها نیست اگر کسی تو این داشته ها ثبات کافی رو پیدا نکنه تمرکز کافی رو نداشته باشه این رو جدتا نعرض میکنم یا میبینیم مثلا تربیر میاد تو فضای تلبگیش میاد جلو درست خواهش اینها میاد جلو چون فضایی خیلی فضایی دقیق مندیو اینها شده اونجایی که باید بشینه زامو بزنه و یاد بگیره رو اونطور که باید بهانه میده بعد میره حالا مثلا تو موضوعات جدید درس خواهش چه کرده میکنه خب اون موضوعات هم گاهن چون جدیدن رفت و بریش توشون کمتره در حال علمی مقدار ضربه میخوره این داشته ها، این تلمبوز کردن ها مفکم خوندن و جدی خوندن همین درس موجود این مهم است این رو خواستن خیلی منتون ارز و ارزان تلم همه این ازادید بله ما خیلی خلقه داریم فقه موجود پاسخگوی خیلی از نیازات ما نیست خیلی تغییرات ممکن است لازم باشه انجام بشه ولی به این معنا نیست که اینهایی که داریم به درد نمیخواه این همه مباید در اصول و اینها درستان سالهای متمادی بزرگان بحث کردن بگیم اینها این به درد نکن. نه اینو هیچ کس نمیگیم. از بیان، از علاز حیر هم نفی یه فیخه موجود به این معنا برداشت نشد. بطرد گروهگراری که من رو صحبت کردیم چه این برداشتی ندارشت. در این بیانشون در آقه... تذکر رو به حقیق داد که این رو حتما ذکر بکنم یه وقت ما اسباب سوی برداشتیم شمید خب ما تا الان چه عرض کردیم خدمت شما؟ عرض کردیم که در فضای فقه حکومت و فقه اجتماعی دردر مندی های پیدا کردند آن دردر مندی در, در, در کجا بود؟ یکی در مکلف نگاه کردند دیدن آبا فقه موجود خیلی داره به مکلف فردی فکر میکنه خب الان مثلا این شخصیت حقوقی با این اثرگذاری هایی که داره خب ککمش چی؟ احساس کردن سن یعنی از مکلف ها هم هست که باید بهش پرداخت به فضای مختلف رو شما برید فضای موضوعات هم به همین ترتیب احساس کرد اون منطقه فباهی ما تو خیلی از گوزه ها مثل بحث اخلاق اونها واحد نشده آنگونی که باید پرداخته نشده پس مجموع اصایتر اینها جز اشتراکات تقریب هم. یعنی ممکنه تقریر ها تفاوت رو کنه. ولی مجموع این اصایتر که هم داری بیان می قائل به لزوم توسعه در برشمند قائد بره لزوم حوصه در مکلف یک شما مکلف اجتماعی مکلف کلان یا هر عنوانی رو براش درنزر میگید باید لحاظ بشه باید به موضوع, موضوع یک موضوع فقم یک مکلف قرار بگیرم و حالا برخی در ناهی موضوع هم قائد توسعه بودن احکام جوارهی و جواندهی و اینها رو بیان کرد در خصوص خورت چطور؟ گفتیم بعضی قائل به اینن اینها چیزی ای نیست که مولدا که همه باشه بعضی از اساتید تاکیدشون رو بردن به اینن که شعر ما باید بداره به سمت ساختار سازی به سمت برنامه نویسی ما یک سری احکام رفتاری داریم یک سری احکام راه بردی داریم احکام راهبردی مثل چی مثل سیاستهای اقلامی سازمان راهبردی توی قسمت مغامدی جمعیت خانواده انتخابات شما باید بتونید راهبرد بدید وضعیت موجود جامعه رو بشناسید و مطلوب همه ایش نزید فکر کنین وزایت موجود چه براد وزایت مطلوب برسد یک سری راه های کلام مبتنی بر فهم فقیهانه به و مسئله دیگه ساختارها بود که عرض که از مای خورسو بنامه یعنی این گونه نیست که فکر کنین ساختارها همش قغلهایی انگار همه جهان هم هم توی این اوغلایی اوغلایی اوغلای ای که بعضی از, از آقای این برداشت رو ازش میکنه که دیگه هرچی تو قرب بود یعنی سمره عقل بشر و حسمن در روز نه آقا خود تو خود قرب مثلا با اینکتار یک زدم آلمان آمریکا رو فرق میکنه و رو گوه فرق میکنه قابل برسی اینا این های نیست که بیانه خوب به رسیده است به این فلان خب و حالا تو بحث احکام ساختارها هم که عشق کردم مثلا ما خسر پناه خسروپناه میگن که ببینید نقطه زرف و خلق در فقه موجود به نظر اصلا این نیست که به احکام اجتماعی خیلی توجه نداشته اتفاقا فقه ما مثلا احکام اجتماعی هم داشته در طول تاریخ اما به سمت ساختار سازی نرفته این شما اون بانکو دیدی هيسر که همین بانک رو درست کنه کی مثل 아이샤ه آبادی فکر میشه آره می‌تونه شرکت‌های مخمس هم داشته چیز دیگری یک چیز دیگری شما ببین اون نیازی که تو کشور می‌خواد در موقع مورد طرف جو خارجی چه نیازی چه راه حل‌های مؤثری در نابون پیدا کنید راهتون پیدا بگیرید خیلی از کشورهایی که تو جهان از اطلاعات اقتصادی در استفاده میکنم خیلی از کشورهایی که تو جهان تونستن در مقابل کشور هایی به استقاف یافته سر و گردنی بلند بکنن دقیقا به این دلیل بوده که سیاست های توصیح شده جهانی که میگفتن اقلاعی از روی بانک جهانی رو عمل نکردن او آقا من بخوام برو می‌کنم، با این گونه عمل بکنم خصوصاً شما نشین علوم انسانیت همون غربی رو بیاده. هی hey, موضوعات جدید برد درست کنن، بانک درست کنن، هی hey, موضوعات شما بشین همی توی منفعلانه hey, موضوع. هی hey, خوش بده نظر به موضوعاتی که اونها درست کنند. فقه منفعل. فقه شما باید رهبری کنه جامعه رو به یک وضعیت تکاملی. تو اون جامعه ایدئال شما. جامعه آرمانی شما. روابط اقتصادی چگونه هست. لوابط انسانی چگونه است، فضای فرهنگی فضای تعاملات انسانی چگونه است. من فقیر متصدیم به مطابعی پیام بغ که جامعه ام رو از وضعیت موجود به وضعیت برسانم چون نمیشه این وضعیت موجوده سوال روز کم میگه خب الان این بانک که دیگه بپردیه و بکش میشو بدونه هی ای من گفتم شو درست کنم باید فکر کنیم اون بدیات چیست حالا اینها من دارم در واقع دیدگاه ها رو به نوعی ممکنه مثلا این بیانی که هر دارم مثلا مانه دو تا استاد با شما دارم مجموع درد مندی ها رو مجموع درد ها دلمشگولی ها اثارتت رو به هاتون درمیان رو و اجمال هم حالا دیدگاه هایی رو خب میکروفونم خسته شد فکر کنم یه صلوات خط کنه مثلا این میرباغری هم همینه بیانشون دیگه حالا فکر کنم نیاز نباشه مثلا میگن ایشون که الان حوزه های علمی متصدی تفقیه دینیه دانشگاه متصدی معادله های علمیه مدل‌های های برنامه هم تحصیل نحات های مدیریتی مصرح میشه اینا هم هیچ کنون با همدیگه نسبتی ندارند یعنی حتی دانشگاه هم با اون مدیل های پیوندش جدی نیست خب اینو یه فکری کرد اگر شما در واقع ایشون حرفش اینه پیدایش اقلانیت تو خط تقریبا یه نمونه با آخر پایگراف اول پیدایش اقلانیت دینی نیازمند حضور متقوم تفقه معادله و مدل با محوریت معرفت های برامده از تفقه دین تفقه که یعنی همین تفقه خودمون معادله رو به همون فضای علم دانشگاهشتن تعبیر بفرمایی و مدل رو به فضای حکمرانی ساختار ها و امسال خب نمیاد؟ بلنده؟ و این نکته رو که حالا تو تو رو باید پایین می‌آدم تپن این که یک تو فضای آیه هم بود که ایشون به کار آمدی توجه کردن خب تو فضای میباغری هم داریم مثلا این شوری نکته که حرکت از تفقه دینی به معادلات علمی حرکت یک خطی و خطی ریست. ما نحلی از رفت و برگشت رو بین این حوزه‌ها وعد داشته باشیم بین این حوزه تفقه علوم و حوزه وسط میدان و معادلات و اداله در حالا در واقع خب ما از اونجای که سلاید 22 هستیم از پنجا خیلی هم ورزیت همون بند خب پس در کنار توصیه در مکلف توصیه در موضوع توصیه در حکم هم داره مطرح میشه. یه خوشی که داری بیان بیکنه صرفا یه و حرام نیست راه بردارم تو بر بدیم آقای فردی که بخوایی جامعه را هدایت کنی مثل یک نقطه ایدئال در نخش پیامبر ساختارهای ایدئال تو چه بود نمت باشه چه راه بردارم که از وضعیت موجود با موزلاتی که امروز دارم طلاق دارم گرگوش دارم هر چیدم شما اومد بشنسی مشکلات رو ایدئال ه بیتونی الگو بدی، راه بورد بدی راه بورد دینی باشه دیگه آقا دین باید نمیخواد جامعه اداره کن بگه از امام نفرم اون تهوری اداره باشه از گهبانه تا گوز این طبعه تفقیه ما که نیسته چنین چیزی که بخواد چنین چیزی باشه باید توی این مقیاز کن یعنی مقیاز فقه به بینای مباقی میداره ترجم ما اون فضایی که تو منطق موضوع شناسی گفتیم گاهی موضوعات رو به صورت کل بربرین بانک و کل بشن نگاه کن جز جز نکن یا مثلا تو آی گفتیم که نسبت موضوعات، نظام اهتمامات شارع رو در بیان کدوم موضوع شاره مهمتره تو احکام هم چنین نزلی، چنین مسائلی، هجلی نگاه کل گرانه باید باش. اصلاح هم بعضی از نگاه سیستمی به نوعی میگن دارن چندتان وقتی این کل کلنگرانه بود این کلنگری همه جا تقریبا میان موضوع. شناخت موضوعشون میان تو مکلت میان توی احکام هم میان مثلا فرس رویکرد روی اصلی و اولیه اشاره در حوزه احکام متوجه حرمت یا حقیلی هست اصل بر انذار یا تبشیر یا نه هر چیز دیگه نشون یعنی بطیمی در کل هی احکام رو ن بتونید در کلان فلیق یک ارزیابی دارم بده که من روی کرد و فرزن بعد انذار و بعد بزن یه تبشیر اون روی کرده کلانه بعد وقتی که این شدی که اصل کلی تو که مثلا روی کرد در مثلا انذاره شما تو استمباطات خوردتونم این روی کرد اصل نیست یک نهوه فهمی از دیر پیدا میکنیم که تو استمباطات خورد هم اصل میگذارد مثلا این خط قرمز رنگ وسط طاقیا دوم مثلا اگر ثابت شد که احتمام شارع به قرض بیشتر از در است طبیعتا در جامعه اسلامی برخلاف جامعه جهانی که برای نهاد خیریه ارزش و جایگاه قائلا به تاسیس نهادهای اطلاع قرض و ترویج برهنگ همیتاری در جامعه می پردوزن. حالا اون سوال دوست رویم که آقا استدلالشون کجاست؟ آیا مبلدانیم که میخوایم دونیم استدارم کجاست؟ بگذرم تو عددت فقه و روایه ما تعابیر داریم آگه وجوبن یا آگه تحریمن از این الفاظ که استفاده کرده این ها چی؟ یعنی در فقاحت سنتی ما هم نحلی از تأکیم نحلی از قولمی از تنجی داره دیده میشه متحیم باید به صورت جدیدن خب فرض می حالا نظام اهتمامات رو من بررسی کردم چه فایده داده؟ آیا مبلغی نفهمه منطق شارع در تشریع دستت میاد چی برای شارع مهمتره؟ اگر قابل منطق باشید طبیعتاً فق و شریعی که بیگانه یا مقادف یا برای با شریعت الهی است. تو کاریکاتور چه اتفاقی میفته <تصفيق> یک عکس واقعی رو به هم می رو توش به هم میزنیم. زنیم درماغش رو می گیرم گوشش یه جور دیگه پاهاشو کوچیک مثلا اگر نظام اهتمامات شارع دستت نیمد رو یه سریم مسئله دید خیلی غیرتی میشی. شیم یه مسئله اصلا انگار دهباشیه بعد مورد توجه من باشه چی برای شارع مهمنیه منطق شارع در تشریق دست من باشه که ثباهت همون اثر میذاره من کدوم موضوعاتو بیشتر بپرگزم کدوم ها مهمنیتره یا مثلا درباق تعارض مثلا یشون میگه می این که از مورد جهاد باشند و تعارض نموید که مثلا درباق اینجا امکان اینکه من بتونم بیادم نربود واقعا دیگه سایه علی دوست تو بحث تضامات و بحث مسلحت رو که شما سایه میکنه از بین احساس اون استادی که خیلی ویژیه به مقوله مسئله پرداخته. پردافت دارم این کتابشون کتاب کتاب کتاب و کتاب سایشون کتاب واقعا نرستش منیده وای علی دوست با اون کتاب فکر و مسلحت خبیشون سایه میکنه که این مسلحت چون مسلحت جزبه خودتا و یه دیوری دی تو فقشیه چرا؟ به خاطر اینکه تو تاریخ تفقه ما این گونه بود که ما همیشه دستمون به دامن محسوم بود اهل سنت نبود زود رابطه با وقت قطع شد اونا رفتن به سمت انواع و اقسان راه های اغلایی و مثلت ها و اینها برای اینکه فقه ما نشبت سنی همیشه یک حساسیت جدی وجود که شما اگر نصف رقی میاری توفه خشیه بیار ولی باید منطقش رو توضیح بدی حجیتش رو توضیح بدی باید این دوست نهی که دون کتاب یه مدار این کار رو انجام بدی مثلا تو تضامن سنج سنجه ادایه بگیم مثلا اگر یک مثلا مسئله فردی با یک مسئله اجتماعی تضامن قیدا کرد چه میشوند؟ مثلا چه اونه یا هر چی صحبت که فهمی از امومات دین داشته باشید. یک فهمی از نظام اهتمامات داشته باشید که بتونید در وقت تعارضات مبتنی بر اون فهم عمل بکنید. و حالا تو فضای راه و اینا هم همین که شما تو راه دارید سنجی میکنید. اسم میگذاری برای سال اولایت سنجی میکنید. این فهمی از شریعت دارید. مطمئن پیش باید. خب حالا دیگه این حالا بگذاریم آیا خسروپنا هم باز همین تو شعن اصلی ولایت هست این جمله شعن اصلی ولایت است و فقاهت بخشی از فراینده ولایت هست. شما کل که وابسته جامعه سر پر اس یه جامعه ولایت جامعه است شما پیامبرین دهنده جامعه رو بشناسید چه گورا بشناسیدن چه باید, باید باشه رو هم بعد بشناسید بعد بتونید مسیر بدید شما فرزندت اگه خلاف کارو بجن بسید کلکی من با این فرزند چگونه گام, من. گام به گام جلو بیام گام به گام جلو بیام تا اون رو به گفتمتر برسونید یه تصفایز مضروبت داشته باشیم مسئله موجود میشین از و بدونیم مسئله بدون, مسئل بدون. خب این من تو هم که آیمیر باقری رو هم اجازه بدیم فقط میانم گذر رو فقط بخونم اینجا که سرپرستی آی که میر باقری برای این فقرشو استفاده کنم این فقر سرپرستی سر فضای فرایندی فضای سرپرستی تو اینوا داریم، آیاخصص را پناه و تا حدی های مبلغی پر رنگی. بقیه بقییل این شکر رو همش را ندارم. تکامل اجتماعی که ماهیت آن امری تبول پذیر است می متناسب با مندورات و ظرفیتهای اجتماعی و تاریخی، به نهر تدریجی در ما سمر هداریت شد. شما شدی راهبند اقتضاعات امروز جامعهت رو میشن مثل یک شراب رو نبر یه جا حرام کنن. گام به گام باید پیش برند. و جامعه هم پیش میاد. یعنی موضوع که امنه داره یک تحول بگیرام کنند. خوشمند به طبعش داره تحول میکنه. تعدد پیدا شو شما همه از احکام داری حرکتی میبینی هی سیری میبینی هی ایستا این که من فقیهم هم هست به من چه این واجب است به حج من چه از این قدم بیرون شما با فرزندت که نمیگی که آقا این حرام است این واجب است فقیشو من چه فکر می‌کنی با این فرزند بحث بر که چه فرزند من چیکار می‌کنم چگونه ولادت کنم چگونه سرپرستی کنم؟ دین یعنی سرپرستین هم توی مبانی قاعدتا به یکی مدران هستان که بردار مزاری همون گفته باشن دیگه یکی از دعوا به همین شهن شاهده به این تققیی از دین دیگه اینا رو ما بارد نشدیم اینکه شما دین رو چکنی میفهمید خیلی همینجا رو از هم یعنی این مابا شما دین رو به مساقی سرپرستین میفهمید یک مابای نگونه حالا خب در منطق و حکم شناسی چه عرض کردیم؟ گفتیم یک نگاه نگاه کلان نگر از میگوید این حالا در کل ببین نظام احتمامات باید داشته باشی همه احکان را در نسبت هم باید ببینی یک نگاه به این افزون میکند میگوید باید تکاملی ببینی یعنی این کل متقیر از, از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب میرسد درسته؟ فقه موزید ما هم که فقه جزنگر اکثرا آیه فاظل یه سنخبیتی مزدح میکنند. میگوید این بیان که شما بگوید همه احکام به هم مرتبط است که حرف غلطی است. ربطه فی جمعه به این احکام داریم. هر جا احساس کردیم که ربطی هست اون ربط باید لحاظ بشود. شما منطقه شما یا منطق سیستمی تو بیاد بزن همه چیزو بخوایی سیستمی بفهمید و بین همه چیز ارتباط داره. اینو میگن به دعوه موجدی جزئیه در بعضی از نمایات ارتباط است مثلا میگن به چه دلیل بین وجوب حج و وجوب روزه یا بین وجوب زکات و وجوب خمس باید ارتباط باشد اینا رو اون طرف مقابل طنفع و اون نداره من دیگه دیدگاه ترت مقابل هم نداره یعنی اون طرف مقابل میگه من حاکم هم. مثلا یک جواب بین فرض وجوب روزه و وجوب حکم قضاوت کنم یک جواب جلوی حج مثلا بگیرم منطقش باید روشن باشه البته گاهی اوقات به نحن موجب جزبی در موارد ارتباط هست ولی لزومی ولی ارتباط نیست شارع حکیم است. و این شارع حکیم برای برنگان خود احکامی را در حبادات و معاملات جزبی جزائیات سیاسات قرار داده هر جا هم که یک اعتباری کرده تابع به مسال و مفاسد هم هست ایشون یه ارتباط نه در احکام نه ملازم به این احکام توی توید و نه حتی در ملاقات. حالا ای اینا دیگه بحثی که شما که بعدا برایش فکر کنید ببینید این نگاه سیستمی رو تا چه حد می شود امتداد داد و پیشرفتی، اختیزایی جلسته تا همین میزان هم مسته آری در هر موردی چنایی چه احتمال تأثیر موردی یا موارد دیگر در آن بدهی؟ دیگر استنبال به صورت مستقل در آن صحیح نیست و البته هیچ فقیه که این اتمیکی نخواهد داشت در مواقع آی فازه در مقابل آی میگه با خیلی ها که میگم فخر موضوع بیشتر میگاشه اتمیکه آی فازه میگه از این نگاه معنا نداره فخر موضوع هم سطحی از رب تو میبینه منطور باید ربتی که من میبینم فقط در همین سطح بیشتر از این نیست پس این یک تفاوت نگاه شد خب در منطق اوکشتناسی یک نگاه کلام نگر بود یک نگاه تکاملی بود یک نگاه هم که حالا میگیم اتمیک. حالا میگه پیدا ایدا میکنیم یک رسوار با دیدگاه اتمیک. و یک نگاه هم که آقای فاضر بگید که مدرد از انطقه سنتی هم باید ربطه فیلی ولی بله خب اجمالا این که باید رفت در بین احکام لحاظ بشند نتیجه میگیریم که همه قائل هستند درست شما؟ یعنی آیه فاضلی که اینها رو سریح میاد با نگاه انتقادی میگه میگه آقا چی همه چی و همه چی رفت میدید منطق سیستمی آورید همه جا رو حاکم میکنید میگه رفت به جمله هست و اون رفت باید لحاظ بشه. یعنی شما دونست جایی رفت رو نشون بدید اونجوری فاصله هم با شما هم همه این این چیز رو همراه هستن نظریات، گفتنه‌ها، رو پناه هم من توی این آرایی که دارم خب همه اساسی نیست. اونجا گذاره یادگزارای از هستم از اون مسابقه خان دارم با مختصر هم بحث می کردیم همردم. اینجا فکر کنم این خسر پناه رو ما نداریم، ولی ایشون هم قاعدتاً، قاعدتاً به اون فرآیند تکاملی ایناش آره دیگه فرآیند تعین تکاملی در واقع نزدیکه. بله. واسه ایشون این مدل حل مسئله، ایشون مثلا اولو اول اصلا در در خسر پناه نمی‌دایم خسر پناه نداشته. یه بندی داشته در روندش. یعنی ایشون با فضای فلسفی و کلامی آغاز می کنه. فضای مهد شناسی بحث باشو اونجا می بنده کتاباشو چاخت می میاد میان جدا گام به گام میاد جدا الان داره فقه حکومتیشو بزنده یعنی یه های هی تو فرامنت بحثیش بسته الان داره فقه حکومتیشو در نهایت حکمین کنه پروژه, پروژه پروژه گام به گام اومده ایچه دوی نیست به هم موضوع یه جا برداخته باشه دردرهاش تمرکز داشته تو بازار زمان و ایشون خب یه نکلی که خیلی برش مهمه برمه شناسی علوم اجتماعیه میگه علوم اجتماعیه مرسوم همی کاری که عرض کردن میکنه شناس روزیت موجود، الان تو فریان دفعه وقتشون نیست شناس موجود میکنه، شناس روزیت مطلوب میکنه و اولویه انتقال میدیم. می یه هرچه دیگه گول می‌رسانیم بیارید. من با من یک فیلسوف اند نخواهم نواه بکنم که کاری می‌کنه اقتصاد جامعه را زنده می‌کنه. جامعه رو بسنسه. ای جامعه نه هم دنیا می‌خوایی رو که داریت کنه؟ مام ای بخوایی سال پیش تو بیندازی این سزار رو پاسخ بدیم. یا له هم برش علم دینی آیا خودش کنم؟ هم فیض و اینها بنویی جره نخورن؟ در آیا خودش رو یعنی اما به ای که نمیشه علم دینی های خسوپنه ها رو فارغ از فکرش توضیح داد. و فقرشو نمیشه فارغ از همیدیم خب کلیات روشی ببینیم اون کسانه که میگن کلینایگری باید بکنیم خب چجوری کل کلینایگری کنیم آقا این سوال. اینا میگن ببینید ما یه سری عمومات داریم مغازل الشریعت داریم که شما مغازل الشریعه ای که چه صد و چند سال عمرمشتن یاد در سابق هم در فکت بود و ای کاری که گذشتین کنار قرآن کریم سراحت داره که نباید اموال شما بین اقوام شما فقط بگردند خب این یک اصل کلی است این اصول رو بگذار رسند این حال روحی رو ایجاد میکن این همون کلانه است یک فضای عمومی یک روح شریعه یک فضای نقاساتی مطرح میشه این به شما کمک میکنه که احکام رو در نسبت دبیدی یا در نسبت با عمومات بتونی معنا کنیم خب ایشون مثلا حتی فرض کنید آیه مبلغی خب یکی از توزر هر هایی که تقریبا همه این اساطیق میزن اینه که قواعد فقیهی که فقیه ما در فقیه داریم باید توصیح مینا کنند. و همین نشد که هم چند تا سیه دازنه رو میخوام. و مثلا فرصه آیه فکر میکنم آیه مبلدگی مبلد مبلد هستم. خب تو فرصه احلیت قواعد فقیه خیلی زیاد پرداخته شده و زیاده. ای مبلغی میگفتن که من توی یکی از این کنفرانس‌ها رفته بودم خب از من سوال کرد یا آقا شما در چیه چند تا قواله دارید؟ من خب عین خودم مطلبی داشتم موجود پاسخ بدم بعد میشه میگن 10 تا به اون وطنه پول خاطرم نیست رقم رو با اون رقم, رقم نمیشود ولی دیدگاه خودم رو گفتم گفتم همون حالا یادم نیست دیگه یه تا اینطور خاطر هم نیست ولی یعنی قابل توجه گفتم ما هم داریم کاسیب من برای تو میشه همین همه این اساسی طبانه اینکه ما تو قبال فقری و کار کنم همین امومات یعنی شما یه لازره میسازی درسته اون لازره خیلی جا تو استمباطه خوشمیت میاد حالا اگه گفتی که انوال نباید بین این عقلی ها در اسلامی بگردند خب این میشه که کل قاعده خیاله رو هر چیز خواستید سوشو بزاریم ولی انواع اینها انواع عموماتی میشه و در کلام قرارداد اینها به شما کمک میکنند که موضوعات رو اصلا با نگاه یری تحلیلی بکنید و حکم رو به نحیدی یری بدهید حالای مبلغی چی میگه میگه حتی قواعد فقیه رو هم شما شرک سازی کنید ای در نسبت با هم اگر جایی محل لغربور و مثلا یده قاعده یلخم بود حالا مثلا بین اینها چگونه امن بکنم در اصفت با هم هم به اینها رو تحلیل بکنم پس کلنگری سوال بود آقای اونی که میگید کلنگری کلنگری کلنگری چگونه من باید کلنگری کنم این نگاه کلده از کجا میاد یک راه هر که آقا ما به سمت قبائل فخری اون امومات که سایه میاندازد بر فخر رو, رو فعال کردن روح و شریعه و حالا نظر پردازی فقری و کلامی و امثال هم مثلا فرض کنید که حالا دیگه اینجا باید میوردیم دیگه نیوردیم خب تلقی شهیصد چیه؟ شه... شهیصد میفهمید که ما احکام رو می‌بینیم از این تو از اقتصاد و نام اینها از این سزایه مکتب آنها به نوعی داره از شهید سر به میشه که هادمی خیلی رو فضای این فضای رو سری کردن ادام بردن میگن احکام مختلف رو من میبینم از مجموع احکام دلالت التزامی میگیرم و به یک حکم فراتر میرسم حالا این تو عربیت های احرافی اونها هم هست به چه دوتر عرض میکنم مطای یک روش به دست آوردن آن کلان استفاده از است. احکام خورده از پایین به بالا برویم و کلیات را دریابیم و یک روش دیگر این هست که اون عمومات را پیدا کنیم مقاسه قوالد فقهی از اونها به تمام پایین بردیم حالا این هم تفسیلات در این اساسی پیدا میکنیم شما وقتی درگ رو پیدا کردیم این احساس که من تا موضوعات رو اینطوری اینقدر راحت بررسی بکنن. باید بخم شعال دنبال چیه؟ این راحت ها هم مثلا تو نظام اقتصادی، مالکیت بالاخره خصوصی تو اسلام شاید صد همین کار میکنونیه. یا عمومی مثلا دعوای نوست آنها دعوای همین چپ و راست در اقتصاد آزار اقتصاد دولتی. وشون میگه با مبتنی و احکام و اینها میشوند رسید که نبرای اسلام چشید خب این نظام قانونی اونش افتاده خب ما تا الان چه ارز کردیم؟ تا الان ارز کردیم که سنه توسعه در نقاحت موجود روح داد در مکلم و کلمین جدیدی پیدا کردیم در موضوع موضوعاتی را برشه که با اونها هم که باید پرداخته نشده بود و در احکام هم توضیح دادیم که ما نظرمند توسعه در احکامی راه بوردها ساختار و اونها را هم باید در احکام بورد توجه خواهدیم دسته؟ سه نه به توصیح مددی یک بحثی دارم ده. تحت عنوان نظام قانونی بداری سیستانی به روی نظر قانونی رو بعد ذهب میکنند یا اونجا برد اشاره نیست؟ مصاله اینی که شما خطابات شارع را چگونه بفهمید؟ حالا اومد این مارده تفقه شد، آقا این مکلپان رو داریم، این موضوعات هست، احکام هم هست خطابات شارع را در چه فضایی بفهمم؟ در فضای رابطه افدومولا تحلیل کنم؟ مناجین و معذریات که من اگر حکمی بهش عمل نکردم چوب میخورم یا تو فضای قانونی خب تو فضای قانونی این خود این توضیح دادنش یک جلسه میخواد واقعا تو فضای قانونی وقتی قانون مجلس شورای اسلامی رو لحاظ نمی‌کنید مثلا حک و حرمت مولا شده‌اند سمرش کجاست؟ سمرش اونجایی که شما خبه اقعای بدارو بیان و اینکیات تا رو نه مطرح میشه بعد مثلا اون شأن مولا و اون رابط عبدالبولا ما خواهی اون رو تحلیل میکنه خودش عرض کردن یک بخص قفت در موشه آقای چند تا فضا رو مطرح میکنن هشت و نوه تا فضای خاکم بر, بر علم و اصول و فرم رو می میکنن یعنی باید شما تصمیم بگیری که علم اصول رو میخواد به نیسی با کدوم فهم از شریعت باید آیا چون شریعت در زمانی به میدان آمده که رابطه فقه و رابطه عبد ها مولا حاکم بوده هر خطابی شارع داره من تو همین فضا باید بفهمن چون تو علم و اصول میبینید دیگه میگنی هنجا توی رابطه در باید همین چیز تحقیه. آیا من نیمونی باید بفهمم؟ یا نه؟ الان من یک فهمیدم دارم خوب خب مسئولین میخوان کشور رو اداره بخوانم سرپرستی کن یا چی. مثلا این رابط عبد و مولایی نیست که رابط قانونیه قانون میذاره شما به قانون عمل کنی به نفت مصادر اجتماعی برآورده میشنی حتی برمت مولا هم نداره که عبد هم خب مجازه میشه سوشید میشه به زرن جاوست و همین مقدار رو از تو این بحث رو تذیرید حالا استدلال های مطرح میکنند مثلا میگن که آقا اولا ذهنیت قانونی که من میگم چون آقای میر باقیدی و این میگن که آقای ذهنیت قانونی که شما میگید مال امروزه نمیده که این مددی میگن ببینید می ذهنیت قانونی در سرت اسلام وجود داشت. پیامبر، موقع که او مدد بین بینی خودش رو غلیه میکنه قانون شن علی صلّه و بعد اشاره میکنن، فلان, فلان جا، فلان جا، فلان جا، ذهنیت قانونی هست. پس نه علی اصلا نیست. این یک نکته. ولی یه نکته دیگه مثلا اختزای شریعت خاتم این است که کدال در کدای. قانونی پیش به بالا داری استعدادهایی دیگه که اینها رو بگذارید استعداد آیات رو باید دارن میگن بین تکلیل و تشریح ارتباطه به آیاتی از کوران مثله همین علا تسقافه میزان اشاره میکنن میگن شعره یک جاهایی می‌بینی یک حرف توصیفی داره میزنه یک حرف در تکلیل بیان میکنه مبتنی بر اون یک خدش بشه این رو. این نشونه که اینها در نسیبتان ها بگذارید که بگذارید خب به از اینجا خب آیه میگن من چیز غیر از این دور رو از فضای عبد و مدار از فضای قانونی رو قاعد هستن آیه بعد این توضیح رو اضافه کنم که میگن تحلیل میکنه ایشون سابقه این فضای قانونی در دنیا و همین چیز رو ایشون که مطالات تاریخیش توجه تاریخشون ارزشمند واقعا من سابقه قانونی اینها رو مدسل میکنند میگوید این نظام قانونی که هر عین این در شب نیست دا. نظام قانونی ما مبتنی بر بلایت هست لذا دیبگاهشون رو باقید به با عنوان نظام قانونی بلایی توزید دارم لالا میر باقری هم نظام امام قادری در تو که هم رابطه عبدالمولا رو میگن همون فضای امامومت چگونه هم فضای ولایتی که این فضای رو باید دید حالا اینها هم اینها رو به عنوان کد از تعریف داشته باش چون از همان نگاهی بدی هم این فضا این فضای حاکم بر فخ این تلویح همه اساسی نداره یعنی الان از اساتیدی که من صراغ دارم همین آقای مددی و میر باقری من خبر ندارم اگر از بحث کرده باشم و مهم با هم از سر گذر مددی تو استنباط و علم رو یک به یک توضیح یعنی مثلا حتی تو درس خارج مثلا این بحثشون تو درس خارج بی اش از گذر که مدل فرنسه مون الان همینجا تو اسلاید قبله درس خارج بی ایشون یعنی اونجا وقتی می‌خواد مسئله رو حل بکنه میگه اول من, من توضیح بدم این رابطه چه است. بعد حکم و بیانه هم میگم از هرگزار این ها فکر نکنید من هیچ کدوم از این مواسیم گفتم این گونه نبود که کلگیات باشه دوره همی خکیم جایی دست نزنه. هر کدوم از این بنده را شما بیاد وارد باشید کامل فضا را عوض میکنه یک ترداد خب فرایند فقاهت دیگه آخرین بحث ما باشه و فکر میکنم دیگه از ها و اینها خارج شدیم تا اینجا سوالی هست یک رفت و برگشت داشته باشین بعد بدم بدید تو اینجا میخوایم از کنم که فرایند فقاهتی نه چه از هست تا شخصیت رو برونام یه فرصت بیشتر از این نمیده اول چیکار کنم با مرد با لبایت یا حدیس چی کنم بعدش چی کار کنم بعدش, کنم؟ بعدش, بعدش کنم؟ باید چی میشه اصلا بعدش میگه منزونه بعدش پاید نظام به دست این فریانه چی کنم باشیم بفهمیم بچی باشیم از اونم اینجا همین سال از اطالی جلسه قد پرسید ببیند از این فضای فردی اصلا بیرون چه اتفاقی الان شما هی مدام یک مرجع تقریب داری تصویر میکنی با یکی مقلدی برید تو فضای حاکمیت نگاه کنید خب ببینید تو فضای چه چگونه چه اتفاقی میفته تو فضای قرب هر اصلا هر جامعی شمایی بخواید برید یه که مثلا نظام نمیگیره ابتدا آراء مطرح می شود. اگر مضموع فقاهت ما به این رسید که من باید مقیلاز فقاهت، روش فقاهت، منطق فقاهت را عوض بکنم شما جنس فقاهت های دیگری خواهید داشت. پیشنهادات دیگری برای ساختار حکومتی خواهید داشت. اینها قابل گفتگو خواهد. اینها باید بری به سمت حاکمیت، به سمت تعریف ساختارهای جمهوری اسلامی. یعنی اصلا فردی نبید که دارم، الان های حوشی دادم مکلوب پول هم تو بانک نزدن مثلا الان ها نیست واقعا این آقایون هم هیچ کدوم نیست حالا هیچ کدوم رو ارز نمیکنم که کسانی یه مدار محدودتر ولی اکسان شاید بتونه میگم تغییر داریم چون این ها این که تا هم حکومتی میبیند اصلا به حکومتی چه میگی؟ چون داره دولت رو میکنه نگاهش متوجه, متوجه دولت نگاهش متوجه دولت به مسابقه یک متخلل هستن ببین تو اون اشی حالا الان آقا این حرف این استاد اون یکم حرف اصلا. این استاد چیکار باعث میکنه روال تغییرش در هر جامعه چگونه است و آل تغییرش اینه که هم گفتگو کن سطح اقلانیت عمومی ارتقا پیدا کنه به یک نوع اشتراکی برسه میاد تو ذهن عمومی دانش قانون شما میشه شهروند شما میشه سال بیست سال و امسال هم کاری که ما الان دردقه دوستانه اینجا و ما چی الان اصلا مثلا چرا ما هم دشواری به خودمون میدیم احساس این هست هرمای خیلی جدی و خیلی خوبی هست در اتاتین و چون است یک شاگرد میاد میشه شاگرد این استاد تا آخر حرف همین استاد میشنبه پیروه منطق همین استاد میشه حتی خود اساتید گاهی حرف همدیگه رو درست نمیخوانند. از واکنشو واقعاً همینه. یعنی یک استاد میاد خیلی سری هم میگه در فلان منطق من میتونم توضیح بدم که آقا این نقطه‌ای که نقد کردی تو منضای خودت هست. یعنی اینکه میگم شما خودت بود. حالا ترسیشو دیگه بسامیش وارد نمیشه. چه باید بکنیم؟ ما باید تلاش کنیم این اقلانیت تقو به رو به یک اشتراک و یک رشدی برسونیم چگونه میسر است اینکه این حرفای خوب رو ما بشنایم حرف‌های همه رو ببینیم این استاد چینگی او استاد چینگی استاد با این تجارب و والا داشته باشیم بشینیم گفتگو کنیم وقتی سطح این اقلانیت ارتقا پیدا کنه تفرق کنید که کنید مثلا اداره جمهوری اسلامی اگر سطح فهم اقتصاددانان در کشور ارتقا پیدا کنه طبیعتا خودش تو اقتصاد کشور نشون تو هر جامعه تو هر دانش تو هر فضایی هست تو اداره یک دانشگاه هم بزن فضایی هست بس مسیر ما چه این مسیر پس فضایی هی طلبی فردی که آقای مرجعه تمرد یک فردی میده هم با این فرق دارد نمیشه و اینها درده در باید بده روی کلام و رو گفته و اینکه ما بتونیم یک جمع بردی ناظر به مجموعه برسن خب سو ما تا الان در عرض کنم که برنامه متین هست. اینها چون فضای تغییرهایی بوده که ما تا الان توی مجموعه معنا داشتیم. یک به یک شروع کردیم. چهره های مختلف و این ها رو باورش شدیم و فضا هاشون رو مطرح کردیم. بید. خیلی از همین اساتید این گونه نیست که اینها بی این, ها این بازی ها و این دردسرها همش از همون حزت امام آغاز میشن نه اگر حضرت امام روحی فداه نبودند، هیچ من این مساله ها نبود یعنی این امامی که داره اشل رو تغییر میده و مساله حکومت رو تقدم حکومت بر بالاکموه معنی اینا ام... اینها رو مصابه امتداد آن فضای حضرت امام لحاظ بکنید یعنی شما نگاه بابید هم آیه مرباقلی مثلا هم آیه فاضل. اینا همه شد ارجاع دادن به اینکه آقا حضرت امام این گفت مثلا فقط ما انده شرید سرزن اینجا نهی بودیم یعنی اینطور نیستش که بخواهم اینها کوچک نگاشته شدن مثلا اینا نمهمه ممکن ما بخواهم اینا رو کامل بکنیم همه اینا رو در هم باید، داشته باشیم. ولی بی نسبت هم نیستم. این ها امتداد اون هستم. یا مثلا دقاهایی که داریم همین دقاهای آغاز. یعنی خود معامل زمه رهندی این جمعه که به حکومتی باید در, در روز پرداخته می شود و ما اگر از اول مثلا تهارت آخر بیاد و این ها با یک نگاه حکومتی نگاه کنیم به احکام دیگری نیستیم. اینها همه در واقع بهمت ایشون هست ولی حالا میشه اونم قهتر فرموش شما متینه و ما خیلی چیزایی دیگر رو به این اضافه کنیم این فرموش شما هست بفهم مجموعه کنید؟ مجموعه کنید در حالا میخواید سوالتون میشتر توضیح برید که من مطمئن باشم دوستی آقاید اگر نظام ساعت ما برای چی میخوام دیگه؟ این که کشک رو میشه؟ همون نظام ها بیرای سوید؟ از یک نیست چیز دارد؟ ببینید، خب مثلا که دیگه آیا خان اساسی پاسخگوی همه چیز اگر بود خب این سیاست‌های های مثلاً اقتصاد از مقاومتی چی؟ یعنی این موقع شما یک سیاست کلان دارید هی زیلش مبتنی بر شرایط دارید اصلاً حرف این آقایون چیه؟ حرف این آقاین اینه این که اصلا فکر نکن من میتوانم آقا فکر نکن میتوانم رساله عملیه و علمیه نمیدنم فکر حکومتی منتشر کنم برای همه تاریخ آیا موبلای خسوپنهای های به چیزی نه حال اصلا ما چیزی نمیگیم به اقتضای زمان شما بتونی راه برد بدی این یعنی تفکر امروز رو باید بتونی ولایت کنی هزار شما یک بله این قانون اساسی درن نوشتیم ممکنه البته کسی بنشینه امروز بگه مثلا یک اصل قانون اساسی هم محتوای فقهاتم باید مثلا روش فکر کنیم ها این جای ولی امروز چی مبتنی در اون اسناده کنان شما اسناد تر هم دارید امروز لازم به جمعیت سیاستی بعد باشی راهبردی بعدش همه اینا هم هست انقدر دامنه‌ی این مساله ها گسترده است که با این فضایی، مثلا شخصیت موقعی دوکان مزدی کجا داریم یا این درستایی که دو بانک هست مثلا چه کنیم بانک را؟ خب این ها دوکان نیست ما به طوانین در رو مختلفی نیاز داریم و نیازمند این هستیم که به روز به توانیم حقیق بزنیم و بری کنیم فقاحت اداره جامعه، فقاحت سر بر اصد این تحکیل میکنم. این ادبیاتی که داری میشه. عدبیت همه حساطیب نیست. اون دسته حساطیبی که رفتن به این دیگه. یا دسته دیگه فکر کنم این ها میشه سوالاتون بجاست جا ولی میشه گام های بعد این یعنی حالا منطقه ببینید خب فرض بفرماید شما اگر به سیره معامل معظم لحوهی نبا کنید فرض کنید مثلا تو قرار شما نگه کنید تا حالا با سیره معامل معظم لحوهی هم پیش نباید فرض, فرض کنید که نحوه مباجعه سطح عقلانیت فقهات ما تغییراتی کرد فقهات ما متحول شد فقهای شورای نگهبان ما به گونه دیگری با موضوعات مواجه شدن یعنی این اشتراکی بین نظرات هست فکر کن همه فقهای شورای نگهبان با این نگاه خب از این بحث موضوعات بررسی کردند خب خودشون خیلی سریع و راحت حکومت نشویده اینه که روش تورنس کافی این نهر اقلانیت به یک پوختگی رسیده جو اینا همه اساس اینو تأکید می‌کنه تقریباً اکثر اساسیت دارن هنوز درسشون رو میپندن و کار میکنن و ما هم تو ارائه مدام مجبوریم الان تقریبا نمی‌رسیم دوباره چک کنیم ببینم ایشون تو درس خارجش چی داره گاهی تحولات جدیه گاهی کمه گاهی بیشتره اساتید دارن کار می‌کنن روی موضوع. موضوع پروژه الان این آقای بده یا یعنی اینکه پروژه‌ای باشه که بسته باشنش تموم کتابش، بشه کتابش چاپ بشه ما هم که عرض می‌کنیم، داره تلاش میکنیم برای تا چند ماهی اینشالا ندریات اینها رو کتاب کنیم، چاپ بکنیم شاید تاریخ مصرف اکثر این کتاب ها نهایتا دو سامن میشن چون موضوع موضوع روزه خب، حالا فرض کنیم به یک شرایطی رسیدیم که مثلا همه آقایی، مثلا تو وزاهای علمیه تقریبا این فضا غالب شد، شورا نگهران این فضا غالب شد خب عملاً فضای ت تحقیل میکنه خیلی سو پیچیده ای نیز شما نحصت امدالیت عمومی رو هم هم خب من این فریاند فقاحت رو هم تو دوسته تا اساطی توضیح دادم خدمتون برای اعرافی میگن که شما میخواید به وارد تضایی اون سخش مطلوبتون رو میخواید تولید بکنیم جانا ما اسم بخیش کنیم اما رو هم نبودیم تک اون تو اشاره این کام اول اجتهاد تک است. اولین مرحله از اجتحاد اجتحاد تک, اشتحاد اشتحاد تک و غیر منتظم است اجتحاد تک گذارهی منویش این است که فقیه یا متکرده موضوعی یا مسئله‌ای چه در زمینه فقی و چه در زمینه محالف را به کتاب سنت و منابع دیدی ارزه و پاسخ مسئله را بیان بکنن اجتحاد اولی مرحل در مرحل اجتحاد تک بزاره. مسئلهی دیگه منظوم سازی است این بیان به اون بیان شهیستن خب خیلی نزدیک میشه دید منظوم سازی یعنی این که مجموعه از گذاره های پیرامون یک موضوع کلام را جمع کنیم و ساختار علمی به آن بدنیم. یعنی چی؟ منظوم ساده است که به کمک آن رابطه احتمالی بین چند یافته یا رابطه مجموعی گزاره ها که از نگاه پیشمین یا نورمانده بازشنات دستبندی و شاخص بزاره می شود شما یک نخ تسبیحی به این احکام پیدا می دارید را و احکام را همه آنچه دارید مثلا در موضوع ایشون مثال می یه موضوع زینت چه حکم در افوال مقدر فقی مطرح شده؟ ناره کنار هم میگذاره؟ چه آیات روایاتی هست؟ اینها رو مجموعی ببین گاهی به یک نخ تسبیحی میرسی این برداشت رو میتونی بکنی که در این موقع ماذا در این موقع, در این موقع در این موقع این مسئله خاص برای اشاره مهم هست یک برداشت کلامی میکنی مثلا فضای اقتصادی برنسی میکنی از مجموعه احکام این برخورد میکنید که در واقع مالکیت خصوصی در فقه به رسمیت شناخته شده مالکیت عمومی هم به رسمیت شناخته شده مثلا اقتصاد تعاونی هم در بیشتر سه مدل فرزن اینها نگاهایی که شما از احکام خرد پیدا میکنید چیکار کردید موضوعی اینها رو کنار هر چیزی دانه های تسبیح سرگه یه نخ تسبیح کنید در نگاه نخست چند گزارگی به ظاهر بیر ارتباط هستند اما در نگاه ژرف و تبهی ارتباط آنها روشن شده و هم پیوند می‌خورند که قابل میشه اون دانایی تصفو اینها هستند و حالا توضیح میدن که در این مرحله که مرحله دوم هست چه اتفاق میفته میگن که خب اتفاقی که میفته اینه که این شما با بندی میکنید شخصیت رو بنت نشه میشه برای نمونه همه احکام مسجد در یک باب و با عنوان احکام مساجد تجمیع می شود موضوع زینت از مباحث مورد نیاز جوامع اسلامی است شما در حالت عادی به زینت به موضوع موضوع جدا نگاه نمی کردید الان کنار کنا اصلا یک بحث جدی به رو شما فقهی تو تربله اولو یک مساله جدی نحوه تبیید یعنی شما اگر مثلا در علوم انسانی یک و علوم رو از قرد گرفتی فکر نکن دیگه هر جور بخواد میتونی پیش دری علوم را اسلامی بکنید مثلا اگر در علوم انسانی الان شما بین اقتصاد و روان شناسی و جامعه شناسی شما دیوار کشیده شد و اگر اقتصاددان شما فهمش از بقایه اقتصادی ریاضیوار ریاضی شد لا و نشو از جام‌سازی نه بود، فهم انسانی نداشت، فکر نکن که شما اگر درسی فقط اقتصاد خوندی و هیچ درکی از جام‌سازی جام‌سازی نداشتی، می‌تونی اقتصاد بسازی و تولید کنی. تو ترکمودی که یک دستر خاص جاده که اون رو داری داره پیش میاد. تدبیب خیلی وقتی که تغییر بکنه، نتیجه‌اش این میشه که شما بعضی از موضوعات که موضوع خاص نبود، میاد واسه میشه یک باب درس خارج شما میشه شروع که یک کتاب و مثلا شروع به احکامش میخونید یک باب اگر یک باب جدید در کنار این بود شما احکام اون رو هم به صورت مستقل میخونید اون موضوع مهم میشه تو فضای ای تو فضای مختلف این حالا تو از ای اضافی تو فضای برخی اساتید دیگه هست که ما باید به تبدیل فکر بکنید یعنی <متصف> اگر شما و نظام احتمامات در موضوعات در احکام و اینها نگاه کردید به احکام مختلف حکومتی که مورد نیازه نگاه کردید باید یک ساختار جدیدی بدید که بتوان تقایت اندران را نظام مند کنند شبکه ایلوی های احرافی میدونی دیگه در مرکز مدیریات همین تلاشتشون همینه هستش که ما رشته های جدید تأسیس بکنه یعنی یک شبکه خب این نکته آها این نکته رو میخواستم عرض که فقاهت موجوده ما شما الان با یک نحوه تبدیل مواجهید گاهی فکر میشه که همه طول تاریخ تشیع این تبدیل بوده نه آقا آیا اعرافی مثلا طبعه فازل هم تو درس خواهجشون یک به یک میادن میگن آقا محقق هلی این تبدیل را پیش داد برای فیلم. یک به یک مثلا در شخصیت شخصیت‌های مختلف ما چگونه بود و الان با توجه به نیازهای ما چگونه سامان بدهیم به بهتر است خب تو این تجیمه و تنظیم چه اتفاقی افتاد شما با بندی دارید موضوعات مهمتون چیکار کردید شما اشتهار تک گزاری کردید در گام در گام دو اومدید روایات و آیات و فتاوا را کنار هم نق نخ پیدا به کردید از اینجا شما یک موضوعات مهمی میتونید ابواب مختلفی پیدا میشود و زیل اون بقاهت پیش رود در مرحله دوم دانش دانشها متولد می می شوند ابواب و فصول شل میگیرند مثلا چنین دیدگاه مشابهش در دانشگاه قرآآن حدیث با عنوان تشکیل خانواده حدیث هست. در روستان کاشون هستن این اونجا بخشونه که مثلا هر موضوعیشون رو بردید فا نمیدونم نفا بگوام روا هر موضوعی دیگر چیزی که روایت در درامتش هر نفهومی خواستیم تحلیلش بکنیم ببین که لسان روایات چهیده بهش پرداخته شده و چه حرفایی راجع بریش چه باید کن می که همه ی روایات مرتبط رو جمع بکن، اولم ارتبانه که اون لفظ هست روایاتی که اون لفظ درش هست روایاتی که لفظ مترادف هست روایاتی که به نحوی مرتبط است، این منظومه دست هست. تو اون منظومه شما میتونید یک تلقی، یک ای از اون موضوع مثل نفاق یا هر چیزی بدید. یعنی فکر نکن که فهمون چیز جا نفاق مورد. خانواده ی حدیث را باید شکل بذارید موقع فهم حدیث ارتقاع پیدا می کند این فضای قرآن و حدیث ما هست تمایز حرفی حرف های عرافی با اون فضا چیز ایشون بیانش محدود به قرآن رو دباید نمی شه فتاوال آهدی وید باید در کناب این هم کناب داد و در نهایت چون به نظام می‌رسید. یعنی همین نظام ها از مجموعه این نخه تسبیح ها که پیدا کردید می نظام اقتصادی رسید وضعیت مالکیت، مالکیتتون رو در اقتصاد شکردی، چند تا اصل کلی دیگه میاد میشه یک نظام اسلامی مثلا توان در مسائل اقتصادی به نظری کلام دستیا باشه که بنده مالکیت در اسلام مالکیت مزدوج و ترکیبی از مالکیت عمومی و خصوصی و دو تا اینها کجا بوده؟ مشخصاً تو فقه تو و نبوت باید نه. تعریف دست مصادیق احکام رو دیده، روایات رو دیده، آیات رو دیده، دیده اینجا به رسمیت شناخته شده از مالکیت دولتی مثلا، مالکیت اقومی پس مالکیت اقومی داریم، یک اصل کلی، یک نقه تصویی چند تا اینها رو که در هم میشه نظام اقتصادی مثلا شکل بودم بعدی شونی که حالا اینها رو که در هم روندن اینجورو باید امتداد بدیم و لایه معلقه لایه نر و تقدم که میشه سکی زندگی و لایه سخت تقدم که میشه فرمان باری خب یه سلامات خرص کنیم <متصال> خب این سلاماتتون سلامات خرصشون باید کسی بود خب من درفته فهمت. <تصفيق> آره مفرین نفرمید. سؤالی اگر هست دفرمید. <تصفيق> آره دیگه. تک گذاره شما دار. یه چی فرکتها شما. مثلا این حرام است. اون حرام است. این فلان است. یه چیز چیز دارید. یه یه اینا رو هم دارید. مثلا تو موضوع زینت مثالای تفصیلی میزنه و توضیح میده مثلا تو موضوع زینت از این احکام و این, این احکام مثلا به این درچه زینتی که شما ابتدا تو مش فکر از هم ایش مثلا تو اسلام مثلا مهم است این جایگاه رو زد و فکر ولی بیشدگیش این چیه چه اتفاق اتفاق اتفاقی داره میرفته دفت کنی ابتفاقی که دارد میرفته اینه از که از آن نگاه جوز و تک گذاره شما دارید فاصله میگیرید مجموعی نگاه میکنید میخواید به بالا مکتب اسلام چیه نظام اقتصادی اسلام چیه اون اصول حاکم چیه مالکیت در اسلام چه مالکیت مثلا من دیگه این مثال زیاد چون زیاده بیزنم ارز میکنم پس ویژهگیشی نیکرد این سطح خرد دارید بالا میبتنم بس نمیسته اینجا ده رو. برد. اینا چند بار واقعا زمان به اون, اون چیزی که ابتدا نمیشه شد، خود زحمات و موقع و درست زمان کمی انجام شد. ولی یک فوریتی بود مجبور بودن عزیزان سریعا به نتیجه برسند. این اتفاقی که الان داره میوکده منطق دانش داره عوض میشه منطق دانش رو درست خوش تغییر میشه این چیز یک شرور دو نیست ما الان با کلی سوی تفاقیم بین همین اساطیب با مقرر میاد در استادش رو ارائه میکنه هزار مختی اشتراعش با مقرر و حساد دیگر در زن نمیره اینکه افترا افتراع برد میکنه میکو استاد مقابل استاد ما در مقابل خدای استاد نژاد این است. حالا می بینید اونم واقعا خیلی چیز خاصی نداره. این میخوام میگم واقعا شما تو حوزه دانش بخواد مثلا تو علم تو قلبت بخواد ببینید دانشی واقعا نبوله زمان ولی چی باید بکنی خب راهش هم گفتگو هست. اینکه این اول این حرفو شنیده میشه بابا یعنی طلبیدی عادی مروزه این سراسر کشور نباید از ده دققه و دل یه روز به از اساتید درس خارج ما قابل باشه و نشینده باشه اصلا. خب میگم اولش پیشنهادن خود اینها دیدگاه هم دیگه داشته ما گفتیم مثلا مجموعی معنا که ما اونجا محضر حاجی محمدی هستیم مثلا اینکه حاجی محمدی کشید با همین دغدغه شد چیش محسس شکلید هم در فضای علم دینی هم فضای فقه و حکومتی احساس که اما یکی مشکل جدیدی که داریم مقاست بحث گذاشته نمیشه یا میماند یه موقعی برجسته میشه علم دینی در کشور بد میخواه ما باید بیاییم یک فرایندی ایجاد بکنیم برای توادل ما اذا اولین کاری که دوستان انجام دادن این بودش که یک اردو برگزار در مشهد مقدس هم در موضوع علم دینی یک اردو چمونزه هم در موضوع فقه حکومتی به جای که از اعثاتی دعوت کنن از مقررینشون دعوت کردن گفتن آیه مثلا استاد علم دینی یه تو به مخالفه گفت خودت نمیخوای بی سخن مقردین یک دور اومدن همدیگر را دیدن با همدیگه گفته بود که نظر آسفادشون را مختصر ارائه دادن و این روابط بین در دروزه علم دیدی و فقه و حکمانی داده اداره پیدا بکن و این فضا را کن حالا چقدر زمانی می بده ولی شما دنظر بگید واقعاً فقاحت موجود بخواد بیدین خود این اساطیدی که الان در دا اونجا بحث میکنند. گاهی اینه که تو سبوتاً حرفشون مشخصه ولی اثباتن خودشون بخوام بیاد پایست دخلی اینا رو اجرا کنن میبینی که نشده در نعیم بوده نظام همین آقای عرافی بین اون چیزی که اینجا داره میگی با فضای فقهش یکی نقودار شما فاصله میبینید چون اونست که شما احساس یک اولگو دار دیگه دقیقاً با همونم رابطه تو فقه هر جاره به تربی با هم کار میکن میر جلو. جلو اثرگذار هست این اون مسیرها به نوعی داده پیش میبره ولی اینها میخوام ارز کن ارزم اینه در حال پختگیست خود اساتید برگانده شده حال پختگیست و لازمش این گفته بود سوال داریم ده وقت داریم ده دیگه یاد خلاص میشیم خب پس بهش بشود این نمره از توجه اجمالی به سنت عین به درکی که روایت و اینها رو ممکنه شما پیدا بکنید ولی اینکه شما اون سنت رو تحلیل بکنید مقتنی بر اون بستر تاریخی و در یک برايان با پیشینه و ببینید امام چی دارد می‌کنه در آن هرسه اینها جز حرفایی که اینها محل بحث شد مثلا تو آیا مدردی نگاه تاریخی خیلی نمیدی؟ و خب به فترش خیلی آمدی کنه یک شون موضوع رو میخواد برزاره از هر جدش مشخص میکنه این چی بود؟ یا مثلا فرض کنید که مثلا آیا حالا مثلا این مدردی یک تبکی که میگذارم بین نسل و نس و میگم که شار در حالا میخوام این رو عصبانی میذار طولانی میشه ولی میخوام بگم این نهبه مورد مثلا میگن بین در خود علبهات شاه همون یک نهبه تبکه داریم بین اون جایی که ما زن نهون نمیم که پیامبر سنت الله علیه و آله برید و اون جایی که نص قرآن کریم هست و نهبهای مواجهه با این دو تا متفاوت باشد به اینها نگیه آس. یا اون نگاه تاریخی یا اینکه از فعل معصوم مثلا فرض کنید اگر امه در یک مقتل زمانی اومدن مثلا حضرت امیر بر یک موضوعات جدید زکات بست آیا این مسئله یعنی این مورد یک عنوان جدید زکات یا نه میشود این رو این گونه کرد که فقه حکومتی باید مبتنی بر آنچه سروتزاز موارد زکات را تشخیص بدهد و به روز اعلام رو کنند میشه یکی محل بحث اینها، ها به این گوام تو هم هست و خیلی از اصافی این حالا مثلا تو علی دستانی ها که خیلی جدیتر میشه از این مسئله اینا چی میگن؟ میگن آقا اصلا زکات چرا وز شده زکات بس شد که فقر نروشد. اصلا زبایت آیات دارید که شما اگر زکات رو خوند شدید که فقر خب چرا فقر هست؟ میگرد خب شما توجه نکرد که مقصد از زکات چی بود. به چند تا عنوان که اون زمان خیلی من سهب بستم بکنید. حالا میخوام اگر این فرمایش شما در تحلیل سنت اهل به سنت پیان بر این واقعا محل دهست آل و آلا این همی تاریخ و این لگار تاریخ و این نحن تحیل فرم در خسروپنام یه خود یه خوب این مطلع جدید و مهم درم ارز کنم و دوستان را به قدر بزرگ, بزرگ, بزرگ ایشون میگوید ما سه نهب اجتهاد داریم یکی بیردگی مثبت آی خسروپنام این است که نگاه میکنن آی خسروپنام مجمع و رقش هاست نگاه میکنه به اطلاحای مختلف علمی و دانشی چه روشی می توانند مورد استفاده من قرار بگیرن؟ اون رو میاره در فضای خودش استفاده میکنه از کاری که شاهوادی انجام داده روش میگیره از فضای کو اجتماعی امروز فضای دانشگاهی روش از فضای دانشگاهی روشگیره از فضای شهط تفسیر انتقازیش سینتش روش می ایشون جمعی که میکنه میگه ما سه نوع اشتیاد داریم. این رو دقت به فرمایید خواهش میکن حسن خطام ما باشه میگوید در اشتحاد اول شما دنبال فهم جامع و روشمند نصوص دینی هستید و تطبیق برشونه زندگی که آنه روش هایی داره مثال روش اسنادی، برای اصناد نصوص بشاره اون چیزه که آن در علم مصور اینها بحث می کنیم روش های استفهامی برای فهمتاراقی و درشت های استنباتی برای کشف قبارد کلیم دلالت اختزامی بتونید بگید مثلا بگید مالکیت در اسلام چگونست؟ سیسه لرش های این سنترم لرش های استنترمی لرش های شبکهی برای کشف نظام مفاهیم اینها رو دیگه باید دوستان تفصیل شد مثلا نظام مفاهیم رو باید شبکه‌ای دید باید و حالا لرش انتباقی برای تطریق قواعد کلی برمسادیه چگونه من اون قواعد کلی رو برمسادیه بتونم تصفیح بدم. اون نکته که از بحثشون میخوام تأکید بکنم رو داشته باشیم حالا جزیاتش رو دوستان میتونن بعدن مراجعه میکنن. تو فضای اجتهاد دوم چه اتفاقی میفته؟ چون اجتهاد اول رو هم در مبایسته اینجا توزیده در که اون از اجتهاد اول هم اینجا قوی تر میشه میگی شما تو اجتهاد اول میری ببینید نظر اسلام چیست تو اجتهاد دوم میخوای پدیده جامعه پدیده امروز را بشناسی دقت در تلقی اول در تفسیر سنتاقی شهید صدر شما موضوع را از جامعه میگیری توسعه دموکراسی عرضه میکنی به قرآن و تلاش میکنی حکمش را بگیری در اجتهاد دوم شما نظامات احتمامات شارع را میآوری مطلوب شارع را تو اشتهاد اول شناختی مبتنی بر اون پرسش هایی داری از انسان امروز که وضعیت تو در نسبت با مطلوب من چگونه است و مطلوب امروز رو می کنید در اجتهاد اول شما سوالات را از خارج گرفتید اسلام نظر دور دموکرسی چیه تو فضای اسلام میخواید تو چهارچون توضیه ایش تو اجتحاد دوبار میخواید وضع موجود هم باشیستن وضع موجود هم چه چودی باشیستن هم توی بدن بشنستن میگه نه پرسش نامه داریم تا پرسش نامه دقیقه ها چی هست نظام درم دقیقه مندی شما نظام پرسش های شما محتمی بر وضع مطلوب بر پای دین باید ارائه بشه شما جامعه آرمانی ساختی ساختی میگه آقا تو فضای جامعه آرمانی مثلا نحوی تعامل انسان ها این بونه پس اینها ها من مهم نه بلن ببینن تو جامعه امروز چه شرایطی چه نسبتی با مطلوب داره؟ که بعد فرمه رستیش کنه دقیق کنیم این روش در برای شناخت در موضوعات احکام و طبیهین انسان تحقیق و یافته به کار برخلاق روش اشتحادی اول که برای کشف احکام رفتالی و راه و تبلیین انسان مطلوب بود اونجا که شما می‌رفتید، حکم را از اسلام بگید تو اشتحاد اول مقصود این بود که بگید آقا اسلام الان چی واجبه چی حلامه و علفه مطلوب چیه درسته؟ اینجا شما می‌خواید انسان تحقیم یافتانه توضیح بدی. اگر تقیه این موضوع شناسی نکنند بگه فکر نکن اجتهاد من کم،, کم محنیت ها اگر فقیل این رو خیلی از حسید دارن موضوع شناسی نکنن یا به تعدیل دقیقتر به تعدیل دقیقتر سیستمی برای موضوع شناسی نداشته باشد دیگران موضوع آتابن او او میشناسانن میاد مرجع تع سوال میکن که خب این موضوع چیه؟ او یک توی تو توی استفارت می دیگه دیگاه استفار تموزاتش از کجا در درمیان تع فار در می که اون پرسش کند این موضوع و متفاوت توضیح میده؟ و فکر متفاوتی برای کسی که میخواد جواب بده پیش می در روش استنتاقی متن دینی را با سوال بیرونی استنتاق می اما در اشتحال قسم دوم از متن دین سوال استخراج کرده و پدیده را استنتاق میکنیم. این تفسیر استنتاقی که دون اول منطقه شد خبانه شهیر سر مثلا ایشون از فضا علوم اجتماعی این ها بحث آماری بحث تحقیقات پیمایشی، همه اینها رو میدونی تو اجتماع به دنگاه یعنی آقا چی شما تو روزه علمی همینطور میشید حکم در میگنید؟ بدونید تو جامعه، مثل علم اجتماعی ها، پشتش ما تو جامعه چه خبر خوب؟ حالا نمیخواه بگم دقیقا همین لبش ها، می‌خوام میخواهیم بگمین هایی برای شناخت موضوعات و انسان تحقیم یافته شما باید داشته باش و استراتزشی قسممثلقومومهشون الگووی تغییر می شوند. <متحد> ععنی شما آن که اینها به منبش ساختار سازی یا و بشه به آن پررسزی که که بعدش توضیح دعوتداد شما مالی و باع احکان ساختری و بهشیوه اشتاد قمثل ووم شرکت های مخمت را جا که در آن هم درمایه ها جمع می هم در گردش قرار میگیرد و هم بیکاری را و هم بیکاری را بینیم، ای ایشان در نصلاقه شرکت مخمص در مقابل بانک ساختار قرصان حسنه واقعی با قوامین خاص را ارائه میدهن خب بحث ما دیگه آیه قوامی هم دیگه ما ازنش میگذاریم اگر پرسشی هست تغییر در خدمت هم بیسر اولا الله سبحانه وتعالى و رحمت الله چه